من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد بالله عبدالله الله علیه رسول الله الله علیه و و از شد که بحث در واضح مرمت رشه بود به این مناسب چند تا عنوان دیگه هم توسط شیف دقیقه از ها مطرح شده یکی از اون اناوینی که مطرح شده و بود و عناوین دیگه که متعرض شده از که بینید که این مسئله را بر اینکه دنبال دنبال ریشوهای سالیشو بگرمید این آلا متعرض روایات شدیم که حالا چندنگی روایت شالا این روز بعد از خوندن عبارات عرض از که چی محیبه و بعد ببینیم که نهایتاً در فرواج کاری از خیلی در کتب اهل سنت این مسئله غزق و عرضت قاضی مفرح شده و اینجا به این کتاب الموقعی این حدامه که در یازده این کافی که من دارم کافی شاید شاید میتونه سفیه 376 تا سیستده هفت خواده هشتده ایشون میترمون را یه جزور خاضی اخز و رزبه اخز و رزب و من برای اینکه در تحلیل های حتی فقهی فقهی موفقه باشین اون سیر تاریخی رو نگاه کنده اقوال رو خیلی میتونن نکات خاصی رو برای شما روشن بسن این تشریح من همیشه عرب کرده سید که شما توی یک بیامونی مورید یک مثل آبیه آبی رو های شما پیگیری می‌کنید. مثلا اون که ده کلومت بریم برمید قرد شد یا مثلا یک جوبه دیگه اون وقت رو داره یا به موازات اون در سر پنس چیمه دیگه دیگه, دیگه پیدا میشه باز آبی پیدا میشه پیگیری میکنید ما راجی به فعلا هم همینطوره می‌تونیم با این پیگیری‌ها، به این که در فتاهای ما آمده که اخذ و اجرت برای قاضی در, در فتاهای ما اگر احتیاج داشته با بگیریم، یا اگر متعین باشه فضابلو نگیره یعنی فقط تنها اوموشه اگر متعین هم. خب پس این مطلب در کتاب مثل علامه که قرن هشتم آمده ما این رو پیگیری که بکنیم میرسیم به قرن پنجم شیخ توسی در محصول دیدیم اولین کسی که در شیعه این مطلب رو محص از غن پنجم که میریم چون دیگه نمیبینیم یعنی این سه غن بوده و باهگه این هم اینطوری میشه بعدم که این باز نمیگیم مثلا همی که مثل... مثل همین که حاضر باشه نفرسیم میاد حسابهای مثلا مثلا سوال های استاد یا همین مبونیه تکمله ایشون هم تفسیر قائل میشن میگه یا جائزه است که یعنی است این تفاسیر این ریشه تاریخی رو پیدا کردن خیلی موثره یعنی خالی وقتی یک حکمی مبداش معین شد منتهاش معین شد کیفیه طلبی اصحابش معین شد خیلی راحت میشه نتیجه گیری کردن حالا راستش ما میایم نگاه میکنیم این مسئله هاجه چون این دو خیلی زاده شده که هاجه یعنی سریان این مسئله حاجت تو کلمات ائضام عاملین ریشه رو در مبسوط شیخ میبینیم قبل از مبسوط شیخ نه قبل از این طرف دیگه اصطلاحات فقها نمیدونیم میریم جروتر بودی مقامی شیعه خودمون تو به اهل بیتم میبینیم یه کم که بیم تو کلمات فقای اهل سنت میبینیم تو فقای اهل سنت هم که میبینیم یه کم بیم جروتر تو تابعی نمیبینیم توی صحابه هم تو این خیلی, خیلی خیلی مسئله رو که نگاه میکنیم خود بخود خود بر ما نفیقی بیزی میشه این معلوم میشه که یک مسئله او از اهل سنت و قوا شیع روایی هم نداره این بعدی ها در کتاب مخصوص شیع که اصل مطلب رو از کتاب احلیستانت گرفته آمده بعدی ها هم به خاطر احترام شیع و مکانت و جرارت شیع تو با این چقدر تاریخ روچنه شد خیلی تاریخ روچنه و خای نخواهی ما در این جوردی ها با این قطاع های رو هستیم بین شیع و بین احلی روایی ها این قطاعی تو اهل رفایات این قطاع داریم یعنی تو اهل رسول الله تو اهل صاحبه این خود این نحوه برخورده با تاریخ احکام و تاریخ خیلی روشن برای ما نشیدیه روشن میکنه؟ کنه خیلی واضح میکنه و معلوم می کنه از تاثیر انفاظ قطعی شیخ در محسوس بوده شیخ یک مسئله در محسوس بوده اصحاب بردی ما به اون بیده احترام خاصی نگاه کردند، تا جایی که حتما من علف کردم این شهرت پتواهیی رو که آیم حسیت میدونم اون نقطه شاید در حقیقت اینه یک عدد کتابا در مفصول شیخ تو در روایات نبوده اونه به روایات نبوده شیخ تو مفصول کرده بعد از مفصول فقاهای بعد شیخ هم نقطه کرده. کرده اونه نتیجه شده یک شهرتی درست شده آمدن بخصن همین شهرت پتن خب اگر تصویر ناید باشه میداریم شیخ هم تفریعات از کتب و سنده روی رفته با قاعده تفریع کرده خب شیخ این تفریعات رو از روایات نگرفته رو قاعده اگر بحث قاعده شد من بحث قاعده رو همیشه بهش عرض میخونام تبنی یعنی اگر معلوم شیخ کاری کرد که تبنی بود به اسطلاح معروف هم رجال و نحن رجال اگر شیخ کاری کرد که تلحتی بود یعنی شواهد نشون داد که اینا از اهل بیتشون رسیده به ما نرسیده قرار این ها بوده و اونها رسیده به ما نرسیده تلقیه بود خب اونجا ایک حساب دیگه برش باشیم در تبنی هم رجال و نهن رجال در تبنی نه به دیگه احترام خواهد چون اون نزدیک اصده شواهد نشون بده بله. اون ایک حساب خاص خودش درد غیر از مسئله تبنیه اما این مسائلی که الان به شما عرض کردم، مثلا بعد از علامه این بحث مطرح شد. چون علامه آمد در خود مختصر بحث میگه لنا دلیل ما این است که حالا مشهور مشغور یعنی چی؟ یعنی این در روایات نیاموجه. شیخ در مخصوص اورده. بعد شیخ هم توهای بعدی غالبا نشون متابعت کرده. این فقط مشهور. لهنا عندنا هو و لا ما عارض در جسم. از این راه این بحث منشعر شد که در اصول ما این بحث مطرح به شفاعی و شعرت فتواری همه حجت هست یا نه؟ پس این بحث آیا شعرت فتواری حجتی از قبل هشته منو هم به برد داستان اصلا بحث و فقار قدمی ما هم نه بود اصلا این بحث ثابت هم نداره و خیلی بر ما ندیش شد. نیش الان ظاهر میشه خب چه نقطهی داره این حجت باشه شیخ در قرن 5 سالن 8م قرن این فتوا بدون اینکه در روایت باشه صرف قاعده استخراج شده تفسیری کردن برای یک مطلبی گفتن خب ما میگیم تفسیری کردن قاعده نمیشه میگیم این درسته چه نکته ای داره بگید جو با که اد کردن دو کشور بین این منطقه این از زمان قرن هشتون میاد تا قرن 5 منطقه میشه این در شیعه که خیلی موثر بوده این نکاتی است که باید در نظر داشت. فقها را اهل سنت و هم خوب بحث شد. مثلا ایشون میگه رخصتیه شوری. ای این جزء تابعینی که در کوفه بوده، و, و سیرین، جزء تابعینی که در بغداد بوده. و شافعی این رتبه فقها است. این بعد از مثلا شافعی در توی امام موسی بن جعفرعزلی رضوان زمان ایشون. و اکثر و اهل علم اهل اهلی ایور بیشتر کسانی من که و قواهد و رو اصول به ساتن شدن ما هستگیم و رویه انا عمر ام نهور استعمار زیده بن سابس اینو خوندم در مسئله از انفتران میکنم هر از قضا دارد هر از نهور استعمار پس محروم شد قدیم تاییم مصبری که در میان که اهل سنت وجود داره به عمر برمیگرده به صحابه ما ایشار توشن برگشت به صحابه و رضاق شورای همکی کل شهر مرد هم و بعد سئل کوفه امار که نمی و عثمان ابن هنه و ابن مسعود که ابن مسعود را قاضی بود برای ابن مسعود یک کار رو برای عثمان رو یک برای به اصطلاح امار نستگوستن و کتب الام آز ابن جبل پس یک سیره عملی از امر هست یک آینامه هم هست غیر از این که عمل میکرده یک آینامه هم داشته و به الام آزبن جبر و عبی عویده هین بعث همه الاشام من دیگه این توضیح دادم نمیخواد تکرار بکنم خود خودوانا واقعا نمیدونم ما داریم که امیر و مومنین به مالک هشتر هین بعث همه الال مصر نوشتن رو دارن دارم من دیار کدم دوزی کرده روشه. اونا دارن که عمر این رو به عبی احیده و معاذ نویش انا از را رجال من صالحی من قبل کن در نام مالک اشتر وقت در افضل رعیت رق... که فی فیلم شد خیلی دوتا نام شدیه اون را عمیب مالك اشتر را و مامونین برای مالک اشتر برسر بزن این را اینجور هم تستعملو هم علی قضا و عوث او علیه هم و عوث در نامه امیر همونی تنمه و وقت سهلهو فی البدر مایوزی هو علته اونجا این بود این قضبش خود بده که نیاز پیدا نکنه و تقل و معهو حاجت رو علمه خود اینجام داره برزقوه هم وقتی به مال الله نویشیده عجیب یکی شو سنامه هرگام ای به اسطلاح و مقام عملم اینجا باستان گفتن که عمر شرعه دوره رو داد اونجا باستان عدیب نویزه رو شرعه اینجا, اینجا. بب... میگه از اهل صحابه چه به عنوان اجرا و چه به عنوان آین نامه مطرح شده رزق قاضی. خود دقت کنید مطرح نشده. اجرت و اصطلاحاً بگشین به این معنا. که طرف این به قاضی پولی بودن که حکم میکن به نبه یکی بگم آسون یا آمان ده هزار هم میگرم هم هستم حکم الاجه هم بیمی کنم اون پولی میگرم این معنی واضح اجرتی یه معنای یک اجرت هم معنی شده اون که خود سلطان اجرتش بده یعنی آماده مثل مرحومتال و سایی تر پایی شده یه دفعه ماهانه براش قرار میدن این اسم روشده بزن یه یا, یا شما هر پروندهی که اقردیم در ازار هم بکنیدیم ممکن شیش ماه یه پرونده نده اسم ماه رو که اجرت از در ازدهیم از سلطان ازدهیم بیتر ماه از در این رو ازدهیم اسمش اجرت بزن امشانش تو فهم اجرت یک اجرت اون نقدار راضحی که ما الان داریم میگیم پولی که از طرف این گرسه میشه رسق ماهانه و برای منصب قض ممکنه فولی میگه دو هم کسی مراجعه نگرده خوب دقیقه نیم رقما منصبه اجرت در مقابل بدل عمل رو رو بعد دارم ارتفاع که اجرت بردی بکنن از طرف این روی اما عضوی بخشان اجرت صرف میکنه ولی خود سلطان بده به این معنا لذا سال و سال بیگه این قسمش درست نیست سال و سال کتباشی نیست اگر سلطان بشه هر قضاوت ای که حدیده دارتان این نمیشه اما اگه بهش ماهانه قرار دادش نداره سال بسال جمع کرده یک من از سلطان رزق از سلطان رو به رزق کنی به سلطان رو مثل اجرت گرسه توضیح کرده پس تا اینجا روشن شد که از عهد صحابه این مقدر مطرح شده حول قطع میفرمه و جوازش آمده و حساب ظاهر مع وجرات هم مطرح نشد. رضوان از مال ما گفتیم تو دادیم گردم. صاحب سلام اینو ما بایده. و قال اول الخطاب ببینیم تا زمان شافعی من ابو خطاب از دل نو و قال اول الخطاب یجوز له اخذ رز و هر یه دفعه مثلا ممکن قرن دهمشا رو باشه من تا شافعی که اوائل قرن سومه و در نیمه دومه قرن دومه صحبت رزق و حاجت و جان فقط ما من با ادمه حاجت سعلا بچهیم و قال احمد که در قرن سرومه ایشون مطلقای دیگه چلویه که احمده ما یعجبونیه انیع خوده علاقه قضا عجره البته در این کتاب عجر و رزق رو با هم عورده اما ما فکر می‌کنیم فرد می‌کنه. اشتباه کرده میکنیم یا اگر خودش نظرش رویم بوده رضع ماهانه است که از طرف بیسور ماهان میگیده عجر است که از طرف این میگید. و عرض کردیم کلمه ما یعجبونی سازگار با حرمت هم داره من پیروز توضیاتش داشتیده توضیاتش شده. شده. شده و امکان به قدر شغلی مثل والیتی حتی اگر به اندازه کارش باشه عجر نگیده مثلا میگه من دو ساعت کار میکنم پرونده تنظیم میکنم بزار این دو ساعت مثلا ده هزار هم میگیم میگه نه نیجی و کان ابن مسعود و الحسن پس این قرن چندون و بود آقا و کان ابن مسعود این قرن اوله و بنا از کردم کلام ابن مسعود در مد کوفه خیلی اثر داشته چون اصولا اهل کروفه فقرشون فقر ابن مسعوده استلاحا در استلاح اهل سنت فقر اهل مدینه فقر عمر و عبدالا ابن عمره اما مثلا فرح اهل مکه فرح ابن جوریج و عطا ایمان. ابن عباس دارد بود فرح اهل خوفه ابن مسعود علی ابن عوی طالب فرح اهل مصر لیسه و شام اوزائیه. ابن جوریج فرح مکه است. حالا وازم بحث و کان ابن مسعود این جزر صحابه هست اول وله حسن اون حسن بسریست که جزر اهل بسر هست ایشون ده است. این هم باید به هم قرمه اول حساب شد پس قبل از احمد بن حنبل ابن مسعود مطرح کرده در میان مسادر اهل سنت البته چون ایشون بعد از رزق عبرده احتمالا اجر و منه رزق برید اگر ما باشیم اجر و رزق پس از اهل سحابه این تو شد اهل صحابه از عمر و اهلی ابن عبی طالب شده غلق و از ابن مسعود نرخ شده یک ره اون مشکل هم بعد برقرار است این یک ره آیا به معنای حرمتی یا منه چرا اجمنه مقدیم ده؟ چرا؟ ظاهران اجمنه مگوند و کان مسعود مسروض روزه تابعینه اهل یمن اما را همون قرمه هفته اینکه مدینه آمده خیلی باعشه وابسته بوده از اون زیاد نهام و عبدالرحمن بن قاسم ابن عبدالرحمن از می برادر فرز. که میشون برادر امن فرده هست که دائی امام صادق میشه قاسم ابن عبدالرحمن جزو کباره صدعه مدینه هست و همون قرنه اول و اول قرنه دوم قاسم ابن عبدالرحمن ابن عبیدت این ببخشیم اون قاسم محمد اشتبه این قاسم ابن عبدالحمن قیل اشتبه اموز برگوپه میشه باشه لا یع خدا نه علیه اجرا و قال لا نه خداعزان علا هم نه دل بین اسنین یعنی ادالت این یعنی مفهوم بالایی ما برای ادالت پول نمیدید اگر این مطلب درست باشه اگر این نقد درست باشه اشکال اونها در اخذ اوزان هم یک اشکال عقلی بوده به قصد کنید این که میاند سیر مسئله رو تیگی بکنید ادعای روایتی نکردن ادعایایی آیی نکردن. شبیه یه ایده رو نرو این که توی گلگرد هم مسالته قاهمده. از اصلا بعد درگشتن از این مبنای مسالته قا. نوشتن چون منصب غذا آن. نوشتن که بعد از توضیح میدیم در فصل داری آنها، اون فصل ندارن. اما اونی که موجز نوشتن، نوشتن چون منصب غذا آن مناسب بسیار عالیه. اخذ ذوج برای منصب، یعنی مناسب با اجرای این منصب مجانی باشه. پول گرفتنش. خیلی شبیه این کلامی که الان اینجا دارن. از محسوح و کان محسوح و عبدالرحمن مقاسم لا یعخدا نعریح اجر و قالا لا نعخدا عجم علا ان نعدل بین این استین ادارت من حد مفهوم والاییس و بالاییس و عالیس نمیشونیم به اضای ادارت پول بگیریم پول برای ادارت این چیه ما به اضای نمیتونیم. این کار اینجا و معلوم شد کسانی که قائل هستن که این که احضر عجم نمیشه کرد تعبودی در اختیارشون نبوده یک عمر فطری و بجدانی و اخلاقی رو مد به نظر گرفت و قال اصحاب و شافعی تا اینجا معلوم شد که تا حدود قرن ثلوم و چارم یا میگوختن عجر درست یا درست نیست و اما رزق رو اجازه میدونن و تقصیبی آمد به مقدار حاجم و قال اصحاب و شافعی یعنی خود شافعی هم قائل نبودن کسانی که بعد شافیه آمدن این لم یکون متعیلن جازله اخصر رزق و این تاییم لم یجوز الا مال حاجیان از کنی قولی در مصاله هست یجوز ولا یجوز رز و عجل هر دو اونم در بین این دو تا قول و ولا یجوز دو, دو سه تا تفسیل هست اگر محتاج باشه یجوز محتاج نباشه اگر متعین باشه کس دیگه فقیر نباشه یجوز لا یجوز اگر متعین نباشه قاضی فقیر دیگه. من قضاوه استم به این هم پوی میگرم یه آجی هستم میشه اون لازمیست من پول میگرم اگر متعین باشه لا یجوز اگر متعین باشه غیر متعین باشه یجوز این تفسیر دوم یه تفسیر بین این دوتا جمع کرده یعنی این طوری اگر تأین اگر متأین نبود جازه اگر متأین هم شد اگر حاجت داشت جازه حاجت نداشت داره جوز اینجوری هم تفصیل کن و عرض کردم این تفصیل این دوتا تفصیل ما بین تأین و حاجت در مسادر از ما برای اولین بار تو مقصود آمده معروی شد در مسادر اهلسانه و قرن 3 به بعد آمده در مسادر ما هم قرن پنجان به بعد آمده نه تو ما اصول نه تو و علمای قبل شیخ هستی باره و الان هم بعدها مثلا مثل, مثل مرحوم شیخ و اینها آه این هستم رز جائز هست هم, هم مثال نیست ادره هم جایزه. جائزه آه هم از میگه نیست اما توی موانی تکنات ها گناهاش بکنم بله و صحیح جواز و اخد رزق علیه به کلها چه متعیم باشه چه نه باشه چه حاجت باشه چه نه باشه لمن عبابک لما ولی خلافه از دهو ار رزق کلیوم درهمه قربان سالی اما هفت ست درهمه هم نهارش شده است ما عم عمر مازکرنا منعن امر و زیدن و شریحن حالا زیده نهارگن مرادشون شده اما این قاضی نبوده. و ابن مسئول و امره به فرض رزق و امره به رز رزق من تولا من قضاعتا و لعنه به ناسه حاجتن الی و لورم یجز فرز و و تحتن وضاعت حقوق از باید می این منجلی فعمل استعجار تراید. خود ساربونی نظرش بینه که اجرت جایز نیست، اجرت جایز میتوارد. پس معلوم شد بحث اجرت از زمان صحابه که نروی شده از صحابه در کوفه عبدالدامین مسئول نرفیده. تعلیل اجرت به استجارت هم خودش من قال عمر لا يانبغي للقاض المسلمين ان ياخذ على القضاء اجرا متأسفانه که از عمر نرم شده البته تقدیر صحت نقل به عنوان لاینبغي است که از کلمه لاینبغي ممکن است عنوان شراحت باشه و به با عنوان حرمت باشه اینم جزء عجبیه اینم جزء عجبیه به اینباره ما واقعا مترجمین خودمون واقعا متغیرا اون نامهی که نمیشته به عبور عبیده و ما آز به شام شبیه همونه از همین و مهمیم لایم بقیه هنگه خود عدل قضایه اجرم این این تو کتاب قضایه الان پیش ما نرسیده اما تو کتاب دائمه الاسلام علیه و کره هنگه خود عدل قضایه اجرم خیلی عجیم اونجا کرهه داره و در کتاب دائمه الاسلام آمده خوده فکره نه خیلی عجیبه این این عباده با از عمر نهان کرده این ها به کار من نمی سهمم چی بوده قصه توی قصه چی بوده من پیلوز عرض کردم اگر آقای من باشن شونی کتابه ال... غارات رو پردار بیارم در جلد دو غارات تصریح میکنه که نامه ای همین رو باید به عمر نوشت به معاویه نوشت معاویه خیلی خوشش آمن ببینه آقا علمون کبی و این اگر مردم شام ببینن اینا افتتن و به علیه نوی تالی میگن که علیه نوی به ما یه به مردم بگیم اینا مال عمر داری مال مالا علیه نوی تالی این تو خزانه بوده ما اقویت به عمر علیه نوی تالی و پخش کرده علایه حالا این مثلا تو قارات هم مرسل تو شده این قطار سنده داره سنده واضحی نداره ما هم میگم سندهش درسته اشتباه نشه لکن عجیب الان شما داریم درسته یک نامه امیر نوشته نمشته یک نامه شبیه بله با آمر نشه یک کلام امیر داره شبیه اون کلام رو فقط سر کلمه اینجا کرهه داره اینجا اگه لایندقی داره این همه درسته اجایلی واقعا نسان میکنه که چه دستی که کار بوده که این مثلا یعنی الان به استثناءی ابن و این کلام از امیر ما ما قدیمترین نوشتاری که از صحابه داریم در مورد قجرت در قضا توی کتاب امیرالمومنین مومنین سامن و قال عمر لایم بقید قاضل مسلمین امیع خود حدر قضا اجرا و ها با مذهب شافعی معلوم میشه مسئله اجرت رزق از زمان صحابه مفرح شده به میشه باید ثابته زدر از زمان صحابه نقل خیلی ثابت نیست اما از زمان تا این شروع شده زمان خواه هم رسما قائل داره مثل شافری که دوم دوبونه بلا نقل بس به زمانی که او تقدم داره اما خب شما میبین من به اون و با هم هوش کااف ای نعلم و فییه این نشون میده که بعد از شافعی ای دیگه تجریاً اجاعی شده. و نعلم و فی اطلاقات ر جایز عذر جایز سر مثل روشن شد و و دا که لنه و قر بکن یخ فال فائلهو انیخونه فی اهلی قربه یا یخفص فائلهو به انیخونه یعنی بله این قربته مراد از قفل قربت یعنی عملیست که منفعتش یعنی انشاءالله خواهد آمد به اذن الله نبیشونی زودی به ازمان انشاءالله اینا یک بحثی دارم کلمه قربت رو بفت کن یک بحثی دارم که من دوست سه اشاره نکنم این بحث قانونیه اصلا وجود به لحاظ قانونی با اخذ اجرت میسازی یا نه؟ بحث هست. کار نداریم مولا به فضاقه توی از اصلا طبیعت وجود با اخذ اجرت نمی طبیعت وجود اینجور حالا چرا شد امشالله مثل این یختص رو میگن به خاطر این این فعل در اختیار فائل ما چون این فعل در اختیار مالک می مولا میشه آمر میشه اگر در اختیارش نمونی کسا میخواد دست می اگر گفت در باز کن مثلا این به علاوه شده من در باز نتونم قوی بزن من درو باز هم. این در باز کردن در از... چون اصل اولی حرمت عمله اصل در اولی می... هر عمل مسلما محترم است و حق مطالبه ایراد میکنه این اصل اولی است اصل اولی حرمت عمل و جواز مطالبه عوض در مقابل امری اصلا نیست لیکن اگر وجوب آمد وجوب حریت شیعه طبیعت وجود این که اینه عمل این نیست بگه وقتی عمل این نشد چطور مطاله به اوجه این در به اصطلاح دروازی یه بندس دیگه هست در موارد قربه هست این, این که لعنه و قربتان یخ و شبیه اون کلام رو موارد میشه. بگن موارده چون میگن اعمالی که قربی طبیعتش اینه که از کسی دیگه انجام داده نمیشه سن قرب ما را چنگ زد. تری مثلا فرض کنید زکات. اگر زکار فقط قربیه صرف بود کسی که این زکار بده، شما در زکار ذمه هست، بلااظی ذمه. شما دین کسی دیگه رو میتونید بدید. مثلا اگر ما در باب کفارات قرار شیم که زلمه نذاریم در باب کفارات، فقط تکلیفش کسیه کسی زاین کفارهش آورده است. الانم شاید بیشتر رأی خودمون علیه را همین که کفاره شخص دیگه نمی‌تونه انسیه قولان حسی چون چرا چون اون نقصیش اینه هر عملی که جنبه قربی و یک نقصی برای شخص پیدا بکنه نمیتونه اون عمل رو به کسی واگذار بکنه یحث سو فاعل این عمل اختصاص به فاعل هر فز که شفاه نماز دور بکنه نمیشه مخاطب بسینه چرا چون قصد قربته و اون جز از خود فاعل متمشی نمیشین اما اگر عملی فرستون به شما گفتن آه شما وظیفه دارین این با مثلا راه جاده رو صاف بکنن تمیز خیابان رو میگن چون خیابان تمیز کردن منو بلی نمی قصد قربت درش نیست میتونه یک کسی بیاد بگه آقا من خیابان تمیز می کنم پول میگیرم چرا چون این تمیز دکت کسی بگیرمتون انجام بده اما عمال قربتی مختص به پایدشه فعش بها صلاح شبیه صلاح دیاره وله انهو وله و لا یعمده خود انسان کسی از طرف قیلت انجام نمیده و این نمایه و انهو این شبیه هم وجب به هر بها صلاح وله انهو عملان غیر معلوم چون این هم یک شبهی دیگه مثلا میگه من قضاوات این هم ممکنه قضاواتش یک ساعت گوشه دو ساعتون گوشه ممکنه چند رسول بگیشه یه عدده در نگاه بکنن پس این عمل مضبوطی نیست فعلم یکم دل قاضی رزقون فقال دل خسمه لا عرضی بین خوان حتی تش عدالی رزقن علیه جار حال این رزقنیشون تأویر کرده این به مرادی اجرته یعنی شاید مرادیشون این باشه بگه آقا من قاضی هستم و که شما مرزون جمع بشیم رو هم ماهانه بود سلطان نیست چون دیگه ظاهراً توش وای نوثر علایتی ظاهراً مرادش این باشه بالا لا ارضی بینه اما حتی تجل اعلی رزق کنه علی یعنی علی ظاهری وجه اعلی نمیگه اساس تجل یعنی همین یعنی مراد اینه که بگید من آقا بین شما گفتم می کنم به شرطی که پول و این مرادش این باشه مرادش این, این تجل یعنی خود مردم رزق خاصه باشه باشه به عباراتی بود که اهل سنت کنیده باشتن خب تا اینجا اونی که ما الان در این مطالب ایتان اینجا از کتاب موضیم خوندیم این کار به پیغمبر نسبت داده نشده به عبوبت هم نسبت داده نشده از زمان عمر شروع شده و از که سه تا مخلق به عمر نسبت داده شده این نامه یکی نامه به معاذ یکی اینکه که قاضی ما اگر کرده یه هی که گفتید به اوجهت نگیریم یا شراحت داری یا حرمه تمام این سه مطلب هم پیش ما از امیرمومی نهارد شده اون بحث اوجهتش هم از ابن شده اما واقع نظر از این شباهدی که اگر ما به شواهد کتابی مراجعه کنیم به صندت قطعی رسول الله میدینیم می در خود قرآن کریم منصب از که از مناصب رسول الله همچون که نبی هست رسول هست ولی هست یکی از مناطب رسول الله بحث لطیفی تاگه آن وقت کردن به نظرم چند تا کتاب دیدن بیم که پر اصلا استیفا بکنن اصولا اگه نخوندن جمع بکنن مجموعه آیاتی که تصویر سیمای رسول الله در قرآن خیلی لطیفه چون بعضی حتی بعضی از آیات قرآنی جبه به استعمال ما شاعرانه هم داریم برگه از آیاتی که میگه اینکه انکه علاقه قرآن آدیش یعنی تحسینی رو که قرآن از رسول الله (ص) حتی جایی که گله خیال پردازانه به اصطلاح میگم ما شاعر هم داره از خواب خیار خابلوتو خدا نره کنه یه دفعه خدا قسم میخوره به جان رسول دهانروشه یعنی به جان رسول قسم خدا سوگند نیست نبی در قرآن نیست که خداوند به جان او قسم کنه ما منحصر در رسول الله له امر که انهم فی سکرت یعمهم اینا در بد مستی گیر کردن گمراه می‌شدن به این مستی که دنیا بر ما ایجاد کرده. اگر قرار این مجموعه و دعای الاله وصراط المنی را این مجموعه یا آیات کتابی که مجموعه اوصاف رسول الله است. ببینم کتابی هم بگم سیمای رسول در قرآن یا نبی و قرآن ببینم کتابه یا نخوندن که ای لطیفه این مجموعه ی کارهایی که برای رسول الله چه جنبه‌های اخلاقی چه جنبه‌های شایراغ رسول الله چه جمعه های توصیفی رسول الله و البته این هست در خود و قرآن باز برای حضرت موسا به بکار بوده شده که برای هیچ پیغمبری وستنه حتفل نفسی عزیز رو داری پیغمبر این وستنه حتفل نفسی من تو رو برای خودم این خاصه حضرت در حضرت در یعنی هیچی کس پیغمبر رو میگم حالا رو بازید بحث نشید یکی از خصائص پیغمبر اک بلکه همونطور که اون آقا گفت و بخیر مرحوم استاد معلومشه که اصلا خود قبوله خداوت یک منصبی بسیار مهمیه چون خدا همونتون برا و ربده لا عجیبه. ایمانشون کاملون حتی یو حکموکی باشه جبه بگم تا تو رو به عنوان قاضی در تنازعاتشون قبول بکنه حتی یو این البته اون نمی نوشتن که اون رویی که منصب الجلیل که داین اعتماد فرمودن لاین ی رسمی یعنی و صالحی. بنابراین اسو بهتر استفاده کردن، حالا اون الان نظر بین اسنینم بود. از اون بهتر استفاده کردن این آیه است. صلا و رب به خدای مؤمنون خیلی عجيبه. یعنی اگر خدا و رسول داره قبول نكنا، کناون اصلا ایمان نداره. خیلی خیلی مقام بالا. و و مقام کامل مؤمن و لا مؤمنه ادا و رسول و امرت هنی یکمونه اگه بگیم این قضاوت مراد احکام به اصطلاح سانوی رسولان شامل قضاوت به این اسمی ای چون قضاوت به این در خدا تفسیر نمیشه میشه اضاقالالله رسول به احتمال داره به الله مراد احکام که جهر رسول الله باشه وکنه اگر کلمه قضا رو به اصطلاح رو کنیم شامل اون قضا هم میشه ولایدم که رسولو و اه... چیه آیون بارنه اممها تو آموز آن نبی الله بهمون الله که در قرآن راجع رسول الله و تأابید و کلماتی که در قرآن راجع به رسول است یکیشو مسئله از این یکی خود رسول الله هم نه یکبارشون رف گرفتن نه اچ. احتمال داره یکی از ریشه های قرآنی هم امین باشه چون دیگه این تصریح قرآن قول لا اسألكم علیه اجرا این نور کلام این لا اسألكم اجرن مال مجموعه شخصی یه ترسدار چون نبی هم هستن خاتم الانگیام هستن ولایت هم دارن خیلی مقامات دارن فقط قضاوت ممکنه فوقات دقت بکنید ممکنه فوقهای اهل سنت از قرن بعدی یعنی بعد از اهل صحابه بعدشون به صحابه مثال اینا در حقیقت آمدن یک استیناسی از قرآن هم کرده استیناس قرآنی شوشن شد؟ بلا؟ کی آقا؟ خیراندن؟ خب از قانون میگرفتن نه اقل شده من اینه بعضه هم مراجعه, مراجعه کردن ندیده من خودم در کتاب میگیدم اگه آقایم که یکی دیدن مستر شده هم که در جنگ بعد جنگ های دیگه نرم شده در جنگ بعد قنات مسلمان ها از مرشدی 100 هزار درهم بود 20 هزار درهم چه با خون سر رسول گذاشت نه در یک مصدر من هرچی که اصلا پیدا نکردم خالص نکرد خدا بود اما مطمئنم جای دیگه بر ایشان خیلی وقت پیشم 3 سال بعد هرچی که اصلا پیدا ممکن بود از اون احوال یک دو این مینا مسلمو که پیغمبر زمان خودشون قاضی تر شده اولش امیرالمومنین این دیگه مرتضا علیه دین شیعه به حسن این قاضی هن یعنی دو بار امیرالمومنین لو قاضی تر شدن بار دومشون همین سال دهم هجری بود که از علی معنا امال در فرض به در حجج الوداع شرکت کردن همین مؤمنین عزیز مدینه با پیغمبر راست از م... یمن آمدن و در حجج الوداع با رسول الله شرکت کرد این بار دومه یعنی حتی در ربایت داره ما هم بریم هم بریم که امین و من, من به اصلا حدث شاب علمی بر قضا حضرت فران الله همون فقط و, و من هر جا که میرفتم کاملا به هر حکم میکردم ما شکت توفیقنده ها عمده هم یک مقضا از قضاهای عجیب و غریبه که الان یعنی به اسم قضاوت های محیر و رغول هم نمونه هست که گودای کنده یمنه که السلامشم مسائل زهری به حساب. چیزی صندوقان بود یک نفر می‌خواست بیفته به دومی چتر دووم به سوم چتر سوم به چهارم چتر همون چین چاته افتادن. بعد از اون برای اولی بگیه داره دومینس و باز یهو باز این با با با. محل کلام در قواعد ما همین در کتاب محمد بن قیس آمده. ما هم مفصل راجع به بحث بعد یه مقدار از قواعد رو ایام تا اینجا هم روشن، نقاط تو این مستلی که الان راجع به رزق امیر و موموشی اما در هدایه مرگینانی داره از کتب اهل سنت این رسول الله بعث علیهان قاضی و سر از لحورت قاض این در هدایه مرگینانی داره اینجا مرگین هر یعنی در کتاب هایی مثل مرگین ها از عمر و بعد از صحابه نرشده رزق نه از رسول الله در کتاب مآز در کتاب ولی مآز برای علیه ابن عبیس رزق قرار دار و وضع روشنی نداره حدیثشون آیون به مصادر رسولت مراجعه کن. و بعدی ها هم که دیگه خوندیم برای فهم مقدر روشن شد و تقریبا میشه او از قرن دوم به بعد فصل بین رزق و اجرت می که اجرت جایز نیست رزق جایزه این اجمال کلمات اهل سنت فردا هم روایات و کلمات علمای خودمون را اونه جمع جمع بکنیم و ببینیم به کجا می رسیم اما معنی مسئله حاجت و تعییون در ریشه های اصلی نبوده بحث حاجت این تفسیر با حاجت و تعییون قضا این بعدها فوقها درست کردن در ریشه های اصلی چه در زمان رسول الله در زمان صحابه چه در تابعی این نموده یه چیزی ایست که بعدها اضافه شده علیه در بوده همه بودش در مجموعه همه کهام برام برام برام بیدن من بشه نه من من ما ولایت اون مناصب در اینه که فقط ما شاید اینا رو خود معنی خودشون دارن چون الاغ مناصب اینم وروا هستند باشه سلام علیکم لازم بالاتر الله يطرح. الله یعنی الله تصرحت ناصر منکبیرن وأي أذى من الماء مو هنقدر نفهم تكلم الإنسان ولا نفهمه أكيد سبحان الله من أذمن النبي نادوس ونستعرض إنك ما كان تكتب رأي الله الحمد لله الصالح الله لا نستخر من حبوب لا عمرة هذا واحد مصيبة واحدة زينا الآن مصيبة يعني شكرا نستعرض نادوس من خبرنا هذا المطرحات كلهم ولكن الأفول بالإستعبار المشروع الإستعبار المشروع في المصور الشديد راته ما يعني بحث يعني ما صار عابيره ما صارت الجورمان هذا شامر وقت شو هذا شو الله هذا هو هذا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال يا مولانا في <تصفيق> خلاله والذي بايعتكم وبقى مثل ما قلت لكم فلا سبب لا لا في ايوه قالوا ما هي لا طبقه ثاني المسلسل الاولاني ثاني فيش ايش ممكن نتكلم على صراحه هذا هذا يعني واضح اني مش لا مو هذه اسكويد الشراء المستهلك وهذا فقط يا حاج شي ابو خالد هذه الشركه اللي حاليا الاغراض هي من بناء لكن اساسا ايش تحضروا هذا الشيء اصلا ما هذا بيت الدين اليكورثي اذا ما حصل شيء اذا زود انا حاجههم يكون إذا لنا مصالحه بالله سيدنا النبي الامام الكبير في منطقه الشركه الارض لا بيان صحيح انما دام احتاجون لحصل الارضين او تكون ارض كل و <تصفيق> حضر عليها بسعود هذه صالحة عليها فالصالحة عليها فالصالحة فتخط خط المرأة تقديم سجد سنسليونيين سنسليونيين خلصة خلصة هذا ما ياضح هو عسل مار شوه عيضان من المبالي بيليه كان هاي الأموال عربا لا ما مصد ما عندي أموال خلصة والشرين عليها لما دخالتها الباطن من أرباح تلك طرد ومال تجاري في التجاري في الواقع من أرباح تلك الثاني من فهذا تلك الله يجال الغرب إسرائيل، أمريكا، الصين، وكوبيا، والصين، والصين، والصين، والصين، والصين، والصين، والصين، والصين، والصين، والصين، بعض الاحزاب مو مخالفه پس یکی هم که معمولاً تکمیل علاج نیست. نه آنطور آقای کوهلی که اینجا فراموش می‌کنه. نه که اینطور ازدواج کرده. نه لا مرد که طریق آن را می‌داند. اینها همه چیز است. نه حالا بهتر ما آن دو مرد ده في نفس لكن هو مؤقت يعني هو مؤقت يعني, يعني اليومين إذا صار عنده المسخه مثلا يروح السجن إذا هو موافق على خساره الصفه هذه هذا اللي يسمونه يا جماعه هو مو بالمعنى الحقيقي فالسياسه الشماليه امريكا وهم نادي المصريين وطالبوا بالاستيلاء الناس دي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 ماذا؟ المذير أعلم يحكم بالأيدي ماذا؟ يعني انظار باصل ومعضوت الناس ومخطب الكعرباء الكبطة طلبية ومعضاء بحكم الآن ما أشك ان هذا النظام دولا موضوع هذا النظام اذا فرحنا عقليا ورما في نفسه نظام مخالص معشان وانه قد يتبقى احنا مع الله که امور ها قمنا بالبحث <سؤال> <خصان> <تس> <vrai> <سؤال> <سؤال> <سؤال> طيب يعني حرام ما يعني تكيف النظام والترمون من العرب يعني حتى اذا صار یعنی مخصوص امواله حرام يعني يعني مثل القاعده و صنع امواله حرام و اذكرنا فينا مخلوط و كل اصدار انواع معينه يعني مثل هذا اللي عن زواج المشتبه او اذا قام مال حلال عنده ماخذ مشكله حرام الحرام صعب له مال لكن في ظنه من اعطاه من, من مال اذا أعلم حرام بيه. إذا أكتبوا في ذلك يا إذا أعلم أن هؤلاء الأموال يعني في تولي شعورة الأموال يعني إذا هو يدخل على لا تحصل من عين الحرام إذا على في الأموات الشركات التقائم السلسطية التي نسلت من 51% الدولة و 49% الدولة لا ف... نفس الشيء أم أنت بقى المالك بقى المعارضة المالك نحن عندنا كل نعرض المالك عندنا نقول أم مالك لا حينها لن نعرض معارض المالك واذا أفرادنا يغلط المعارضة المالك فالنسخ المعارضة المالك أنت في إجازة ز دین علی